فبسم الله الرحمن الرحيم ما تشبه التمثيلية الخُندى ملان رسيدين باستعارة التمثيلية الاستعارة التمثيلية الأمثلة بنقابل أمثلة بدار خاص خُندى بريم قواعد القائدة قائدة بسيكوم الكتاب الاستعارة التمثيلية تركيب استعمل في غير ما وضع له استعارة تمثيلية تركيب يستك استعمال شدي. در غیر از معنای که براش وضع شده لی المشابهتی با علاقه مشابهه علاقه بین مستعار له و مستعار منه است مشابهته با قرینه من اراده معناه الاسلی همراه با قرینه که مانع هست از اراده معنای اصلیش. ببینید باید میشه اون قرینه وجود داشته باشه که ما رو منع کنه ازین که کلام بیایم به معنای حقیقی حمل کنیم بلکه اینو به معنای مجازش. سرخوی اصول استعراف قسم از مجاز نیست. بله. موقعی که من شما رو میگم آقا ای خوشی خب این استعاره ولی اونجا خورشید به معنی اصلی به کار مجاز دقیق خب اینا رو ان شاء یاد میگیری ریزات ریز فرقه رو خب دقت داشته باشید دقت داشته باشید الاست... الاستعاره التمثيلیه استعاره ای تمثیلی عاد السيف إلى قرابه وحل الليس منیع غابه شمشیر بنيامش برگشت بغلافش برگشت عاد السيف إلى قرابه شمشیر برشت. برگشت وحل الليس منیع غابه و شیر در بلندای جنگلش جای گرفت منی یعنی جای محکم یعنی بلندا خب اینجا در این امثله اول در این استعاره یه تمثیلی رو به کار برده. اون تمسیل چه هست؟ بیاید روی بحث اینجا بحث رو میخوریم چون تسییه کمی مفصلتر هست از چند چیز گرفته شده انتظار شده چیه؟ میگه وقتی که شخص کارکن کارگر به وطنش برگشت این هر دو تا جمله آده سیف و قرابه و حل اللیث منی اغابه اینا به معنا حقیقتشون استعمال نشدند بلکه منظورش از این که آده سیف و قرابه و حل اللیث منی اغابه همون کارگری است که رفته جای دیگه کار کرده الان به کجا برگشته به خونش مثل خودتول طرف رفته 5 سال 6 سال جای دیگه خب الان برگشته اگر ما بیایم همین جمله آداسیف و الی قرابه برگشت شمشیر به نیامش و جای گرفت شیر در جای محکم از جنگلش اینو در مورد شخص کارگری که به شهرش برگشته به کار ببریم اون موقع این معنا چی میشه؟ مجاز. مجاز میشه. این موقع معنا چی میشه؟ با قرینه حالیه دیگه میدونیم. خب در اینجا موقعی که بیاین بین این دو حال بررسی بکنیم یعنی حال بازگشت غریبه رو به وطنش و حالت بازگشت شمشیر رو به نیامش میبینیم که بین این دوتا علاقه مشابهت وجود داره تشابه وجود داره نه؟ تشابه شمچی ایجاز نه؟ همانطور که این آقا رفته سالیان درست تلاش کرده کوشش کرده به شهرش برگشته اون شمشیر هم زد و خرد داشته ها الان برگشته به چیش؟ به, به غلافش متوجه شدید؟ این حالت اون شخص کارگر رو تشبیه کرده به حالت شمشیری که جنگ کرده تلاش کرده پیروز شده اون آقا هم پیروز شده دیگه مال و منال گیرش اومده همچنین در مسئله وحل اللی ثومنی اغابه اینو داشته باشید در واقع اینجا استعار ما با چیش داره مطرح میکنه؟ با تمثیل با چی؟ حالا دقت کنید بیت بعدی؟ وقال المتنبي و من ذَافَ مِنْ مر مَرِيزٍ يجد مر به الماء الزلاله زُلَالَةِ وَهَرْكَسِ باشد داره دهانی مریض و تلخ تلخ میابد هر آب زلالی رو میگه اون انسانی که مریض باشه شما موقع که آب بشمیدی احساس تلخی میکنه هر چیزی رو که میخوره احساس چی میکنه؟ هم. میگه کسی که اینجا هم میخواد که با این الفاظ منظورش مریض نیستا میخواد حالت یک انسانی رو بیان بکنه کدوم انسانو؟ اگر ما این رو به معنی حقیقی بگیریم که خودمون من موقع نمیشه مجاست اما شاعر اینو به این معنا به کار نبرده بلکه شاعر اینو در مورد اون افرادی به کار برده که شعرشو نفهمیدند شعرشو عیب گرفتند لذا گفته آقا اینی که شما میایید این شعر رو عیب میگیرید این مشکل شعر نیست این مشکل ذوق و فهم شمایه همانطور که انسان بیمار آب زلالو تلخ حس میکنه انسان بیزوق شعرش رو چطوری احساس میکنه این هم داشته باشید بتوشیدی؟ خب اینا به خاطر زوقی بدبخت بدزوقی که داشتند به خاطر در درک ادبیشون شعران رو نفهمیدن واجه هم اصبانی شده و شیر. یک شعری روشون گفته ولی با تمثیل و استعاره این ترکیب هم مجازه چون به معنای اصلیش به کار نه باز هم به خاطر مشابهت همانطور که اون انسان بیمار آب رو تلخ میپنداره اینجا هم انسان بیمارزوق شعر رو چه میفهمه؟ خوبش نمیفهمه ازش لذتی نمیبره اینا رو کلمات ای درک میکنه مثل اون بدبخت که اون بیچاره مریض که آب رو تلخ حس میکنه خب حالا بیایید در مثال سوم قطعت جهیزتو قول کل خطیبا قطع کرد جهیزه سخن هر سخنوری را یا اگر بخوایم طبق قواعد فارسی ترجمش کنیم بعد فعلو در آخر بیاییم جهیزه سخن هر سخنوری را قطع کرد جهیزه اسم کنیز است داستان از این قراری قومی جمع شده بودند بین دو قبیله درگیری شده بود و قتلی پیش اومده بود که اینا چطوری اینو حل بکنند در همین هنگام بودند که این سخندانانشون داشتند با هم دیگه حرف میزدند ناگاه این جهیزه اومد و گفت که آه اون قوم قاتل خودشو گرفته آقا کارشو تمام کردند اینجا بود که این سخن تبدیل به مثل شد در زبان عرب الان دیگه هر کسی فصل الخطابی بگه ها هر کسی فصل یعنی حرفی بگه که حق از باطل جدا کنه فصل الخطابی بگه این مثال رو برش به کار میبرن بگن قطعت قل قول کل خطيب. متوجه شدید؟ خب تمام این ترکیبایی که تا اینجا کار خوندیم یعنی بیت اول بیت دوم و مثل سوم اینا چی بودند؟ اینا استعاره تمثیلی نامیده می شوند چرا؟ به خاطر این که همانطور که در تشبیه تمثیل خوندیم از چند چیز منتظه شده بود؟ اینجا هم استعاره تمثیلی از چندین چیز گرفته شده. متوجه شدید؟ اینجا هم در استعاره تمثیلی یه حالتی وجود داره، یه شکلی داره که از چند چیز متعدد گرفته شده. پس هر یکی از مشبه و مشبهون به هر یکی از چه مشبه و مشبهون به در استعاره تمثیلی از چیزای متعددی گرفته شده این رو میگن استعاره تمثیلی که خودش گفته بود قانونشو امسلان رو فهمیدید؟ جناب مولوی؟ بریم جلوتر در قاعده بعدی مجاز مرسل توضیح میده مجاز مرسل چه هست؟ آقایون خیلی بحث ساده یه مجاز مرسل اونیه که القواعد خودش اول میخونیم اگر فهمیده نشد توضیحش میده المجاز المرسل کلمتون استعملت في غیر معناها الاصلی مجاز مرسل کلمه است که استعمال شده در غیر از معناه اصلیش کلمه است که ببینید کلمه است که استعمال شده در غیر از معنای اصلیش چرا؟ لعلاقتم غیر المشابهه بایل ولی علاقه اینجا دیگه مشابهت نیست اگر علاقه مشابهت باشه دیگه اش مجاز مرسل نمیگند چیزایی میگند که خوندیم بایل ولی اینجای کار در مجاز مرسل علاقه محصف. یا حالیه هست یا محلیه هست یا سببیه هست یا مسببیه هست ولی مشابهت نیست, نیست. بله اگر غیر مشابهت بود اون موقعش میگن مجاز مرسل چون ما تا اینجا کار اگر یادتون باشه چیزای خیلی زیادی رو خوندیم برید دولار رو بگردید ما قرینه معنیت من, من اراده المعنی اصلی. اما میگه باید قرینه اونجا وجود داشته باشه معنی از این باشه که ما این کلمه رو بر معنای اصلی حمل کنیم این قرینه به ما میگه که آقا اینجا این کلمه معنی اصل رو نداره این به معناه دیگه ای به کار رفته بله. خوب من علاقات المجاز المرسل. حالا كي قفت علاقات ديگه باشه. الان دارم ميقك اون علاقات چي و چي حسند يك السببية تو امثلة انا رو كاملا واضح توزيدا ده دو المسببية س الجزئية چار الكلية پنج اعتبار ما كان شش اعتبار وما يكون هفت المحلية هشت الحالية علبيه تو امثله المجاز المرسل الأمثلة. قال المتنبي متنبي فر گفته له ايادن علي صابغه تول اعد منها ولا اعددها میگه برای اوست بر یا راست بر من نعمت ها ها اُرا بر من چی است نعمت, نعمت ها اعد من ها خود من از جمله همون نعمت ها شمرده میشم خود من اعد من ها شمرده میشم من جزء همون ها نعمت ها ولا اعددها و من نمیتوانم اون نعمت ها رو بشمارم ولا اعددها نمیتوانمون نعمتار چیکار بکنن خب در این بیت کلمه ای ایاد به معنای اصلی به کار نرفته دقیق داشته باشید ولی آیا ایاد که همون یده دست بین دست و بین نعمت آیا مشابهت وجود داره؟ نه اصلا مشابهت وجود نداره. پس علاقش چه هست؟ که عیادو به معنای نعمت کار برده دستو به معنای چی بکار برده؟ به معنای نعمت بکار برده؟ میگه بله دست سبب نعمته دست؟ نعمت با چی جمع آوری میشه؟ لذا میگه که علاقه اینجا چی هست؟ سببیه هست پس این شد بجازه مرسل با علاقه غیر مشابهت علاقه چی هست؟ سببیه هست بریم بیت بعدی مثال بعدی وقال تعالا و قال تعالی و یونزل لکم من السماء رزقا و نازل میکند برایتن از آسمان رزق ببینید؟ از آسمان خدا باران و نازل میکنه متوجه شدید؟ و باران خداون چی رو نازل میکنه؟ بله و رزق مسبب بله. و رزق مسبب چیه بارانه پس اینجا رزقا مجاز مرسله با, علا... با چه علاقهی مسببیه با علاقه مسببیه حالا بریم مثال, با... مثال بعدی کم بعثنا الجيش جرارا و ارسلنا العیوناء میگه چقدر از جیش های سنگین ما فرستادیم جرار سنگینی شد جرار در اسبه منیه لغویش به عنی هست؟ شما می اینو آقا عزیز من؟ اینجا تو کتاب سنگین معنیش کرده. در خود کتاب چیس معنیش کرده؟ الجش و سیر بله. جش بسیار سنگین به این که سنگین و به خاطر این که زیاده خاطر این که تعداد اون ارتش خیلی زیاده پس کم به اصلن الجش جرارن و ارسلن العیونه چقدر فرستادیم از ارتش زیاد و فرستادیم عیون جاسوس خب اینجا ده اگر شما دقت داشته باشید عین به معنای چی به کار رفته بله علاقه هست؟ علاقه این هست که آقا چشم جزی از جاسوسه من... چشم عین ج... جزی از جاسوسه لذا اومدن به جای این که اینو به کار ببرن چیشو به کار بردن؟ کلشو که جاسوس باشه جزشو به کار بردنه؟ کرشه در نظر گیردن به جای این که کلشو به کار بردن چیشو به کار بردن؟ پس اینجا علاقه جزیه هست آه. وقالت تعالی علی لسان نوح عليه السلام والله متعال بر زبان نوح میگه و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم من نوح هرگاه که اینا رو دعوت میدادم تا آنها را ببخشی اینا انگشتانشان را در گوشهایشان قرار میدادند ولی آنچه را که اینا در گوش قرار دادن انگشت نبوده قسمتی از انگشت بوده آه؟ این سر انگشت بوده و که میشه کل انگشت ها رو ببرن داخل کل انگشتو بلکه چی بوده؟ سر انگشت اینجا حقیقی نه دیگه بله پس اینجا اصابه به معنی مجاز هست علاقش هم کلیه هست بله یعنی اصل جز بوده ولی خداوند سبحان کل رو بکار برده نه برعکس قبلی که به جای کل جز رو بکار برده بود اون شد جزئیه اینجا هم به جای کل به جای جز کل رو بکار برده این همیشه چی؟ کلیه بله ماننده این که ما بگیم آقا یکی ای رو پاره بکنه و ما بگیم کتاب رو پاره کرد خب این استعاره هست چی میگم؟ مجاز هست مجاز هست و از نوع چی هست علاقه اینجا چه هست؟ کلی هست ماله. یا مثلا قسمتی از میز رو بشکنه ما بگیم میز شکست در حالی که یه قسمت کوشو؟ کلی صحبتی با مجاز بشکنه آره دیگه الان که زندگی مجازی خیلی رونق گرفته بدون مجازی نمیشه زندگی کرد بریم جلوتر و قال تعالی و آتولیتا ما اموالهم بدهید یتیمان را مالهایشان را آقا تا زمانی بر این لفظ یتیم اطلاق میشه که بچه باشه اگه بچه باشه که مالو بش ندید چرا از قرآن گفته یتیمان و مالشونو بدید یعنی به اعتبار ماکان به اعتبار ماکان اینا چی هستند؟ متواجه شو دي خوب وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام والله متعل برزبان نوح عليه السلام فربوده فإنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا أجر توانهارا کنی بندگانت را گمراه میکنند و نمیضایند و به دنیا نمیآورند جز فاجر خوب اینجا کسی که به دنیا بیاد هنوز بچه هست متوجه هستید بله. کسی که بچه باشه فاجره کسی که به دنیا بیاد آیا فاجر هست بس به اعتبار مایکوله مایکوله پس اینجا علاقه اعتبار مایکوله یعنی به اعتبار آینده شون داره بهشون میگه چی؟ فاجرا کفاره و قال تعالی و الله هم اللهم تعالی میگه فلیدعو نادیه سندعو الزبانیه نادیهش رو صدا بزنه نادیه جای اجتماع مردم رو میگن نادیه باشگاه رو میگن آه؟ الان عربهای های امروزی به باشگاه ها میگن نادیه مثل خود میگه باشگاه پیروزی اونا میگن نادیه خب حالا دقت داشته باشید نادیه میگه فلید او نادیه نادیهش رو صدا بزنه منظور نادیه هست یا اونایی که در این نادیه هستند آه من نادیه هستم منظور بله اینجا محل اطلاق شده اما منظور چی بوده؟ آه. حال بوده پس اینجا علاقه محلیه هست اینجا علاقه چه هست؟ محلیه مانند این که تیمه مثلا سنگاپور باخت من بیان بگم سنگاپور باخت سنگاپور محل اون چیه تیمه که البته اینو هم در قسمت جزو کل فسالوا القريه فاسالوا القريه فاسالوا انجا آقا قريه رو که صدا نمیزنه بلکه اهل قريه رو بلکه چی رو خوب دقت داشته باشید پس اینجا فل يدعوناديه نادیه به معنای مجاز به کار رفته با علاقه محلیه وقال تعالى إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار همون أبرار در نعيمات بعير إنسان مير در نعيم إن بالك به معنای به کار نرفته. چی گفته؟ گفته که ان الابرار لفینائین. همان ابرار در چی‌اند؟ در نعیمت. بله. پس اینجا این به معنای مجاز کار رفته. به معنی چی کار رفته؟ مجاز. باكار. علاقه شم چه هست؟ حالیه هست علاقه اینجا؟ محل ذکر شد باله. حال باله اینجا حال ذکر شده ولی منظور محل هست اگر محل ذکر می, شود، می شود شد محلیه مثل قبلی حالا که حال ذکر شده حالیه شد حالیه علاقه حالت شد در دیمت هستنی؟ حال و محل قبلی خب پس اینا شدند از این شد از مجاز مرسل بحثی ساده بود شما فهمیدید مولوی بله مثلا ماجوز لغوی بود کی از کلمه